مثل دوم خانه های سنگی و عریش ها و هایی که از پیش نخل و بوریا ساخته شده بود رو ماساهای داغ کنار هم نشسته بودند و باد گرم تو گوششان پچ پچ می کرد. چرخ چاهای فراوان مثل دار گله به گله صحرا برپا بود و صدای جریخ جریخ آنها تو بیابان ولو بود هنوز خورشید تو سر و مغز بیابان می‌خورد و هر جا لک سایه‌ای بود آدمیزادی در آن افتاده بود و از زور روزه و گرما از حال رفته بود. بورستان گداخته دندگشوده ده روی تپه ای کجکی نشسته بود و به محمد نگاه می‌کرد. خارشوترهای گرد گرفته آشفته از لای گورهای نو و کهنه بیرون زده بود. و درخت گز بلند تاریکی با شاخه‌های نازک توناکش یکه و تنها میان گورستان ایستاده بود و هوا را به شلاق می‌کشید هر روز از همین راه میگذشت. دلش از دیدن گورستان به هم خورد و چرک لزجی رو دلش نشست اوقاتش تلخ بود شادی و امید درونش فروکش کرده بود دلش می‌خواست دعوا کند زنی خرد شده و سیاه پوش خود را به گوری تازه انداخته بود. زاری میکرد و شروه میخواند. دلا پوشم هجرت جامعه نیل. نهم نه داغ غم چون لاله بر دیل. دم از مهرت زنم هم دم صبح. از این دم تا دم سور سرافیل. آهنگ تلخ شروه تو گوشش خورد و دلش آشوب افتاد. این زنم داره خودش را برو شوهرش نابود میکنه هیچ از این تکون نمیخوره خیال میکنه مرده زنده میشه هر کی رفت رفت باز تو گوشش خورد نمیپرسی زیار دلفگارت که واکیان گذشت باغ بهارت یاد ما در این مدت نکنی ندانم واکیان بی سر رو کارت دلش به هم خورده بود میخلقش به هم چسبیده بود و مثل اینکه تریاک رو زبانش مالیده بودند آهنگ پرشور شروه از بچگی تو خونش و تو رکهایش میگشت رنگ و بوی مرگ را میداد آدم وقتی آن را میشنید دلش میخواست اصلا از مادر نزاده بود نوایش سیاه و تلخ بود قاسم بدبخت زود مرد تازه این زن را گرفته بود که مرد از دست این مردم راحت شد فلک کجا از این حرفا سرش میشه؟ داسش دور سرش میچرخونه به هر کی خرد شلو پلش میکنه اگه منم بمیرم شهرون این زنک برام شیون میکنه چه وایده داره؟ اما شاید من اصلا گور نداشته باشم گور میخوام کنم؟ زندگی آخرش همینه از دست آدم چه کاری برمیاد؟ با صدای زن سوگوار تو گوشش کوبید به صحرا بنگرم صحرات وینم به دریا بنگرم دریا ته به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنای تبینم باهاش سست شد و نگاهش به سوی گورستان کج شد زن را میشناخت قاسم را هم که حالا زیر خاک بود میشناخت راهش را رو به سوی گورستان کچ کرد زمین گورستان از خاشتور و طول پوشیده بود تابوت فکس سنی زهوار در رفتهای دم در مرد شورخانه توسری خورده گورستان به سجده افتاده بود هیچ کس تو گورستان نبود رفت بالای آن زن سایه گندش رو قبر و زن افتاد زن ناله می و سرش رو گور افتاده بود یک تیرگی ناگهانی لای پرک های خفته زن خلید تو سرش سیاه شد و سایه ای بر سر خود حس کرد محمد نرم و آرام گفت خوهر اینقدر زاری نکن خدا رو خوش نمیاد مردتو گور می لرسه پاشو برو سر خونه و زندگیت زن سر برداشت و به محمد نگاه کرد هنوز هق هق می کرد. آهسته می و چشمان سیاه درشتش تو عشق نشسته بود. باز محمد گفت بی خود داری خودتو تموم میکنی. اگه فایده داشت باز هم یه چیزی. پاشو خوارم. به شهرو میگم گاهی بیاد پیشت. تو هم که دلت تنگه بیا طرفای ما. این نمیشه که تو همش سر خاک اوورت زار بزنی پاشو. از هوا آتیش میواره. گور همسان زمین بود. دورش را سنگهای پر گوشماهی گسار کوتاه و بلند و نامرتب تو خاک فرو کرده بودند. زن نیمخیز بود و یله به محمد نگاه می کرد. از زیدن محمد دلش باز شد و توفش را چند بار گورد داد و کوشید تا گریه را در گلویش بکشد. با حرفهای محمد امیدی به دلش راه یافت و پنداشت غاسم است که با او حرف می زند. آهنگ صدای محمد مثل صدای قاسم بود. تسلیت هیچ کس تا آن وقت آنچنان به دلش کارگر نشده بود. خیلی وقت بود بر سر گور میگریست و کسی از حالش آگاه نبود. محمد خم شد و زیر بغله او را گرفت و با تعنی از روی گور بلندش کرد. زن سبک از جایش پا شد. لبهایش میلرزید و چهرش از خاک و عشق چرکین شده بود هیچی بدتر از بیسر و سامونی و بی کسی نیست من دیگه نمیخوام بعد از قاسم زنده باشم زن گفت و سرش را به زیر انداخت و زنگینی اندام خود را به محمد تسلیم کرد محمد قاسم را میشناخت جوان رشید زحمتکشی بود که چند روزی تب کرده بود و بعد مرده بود روزی که مرده بود خود محمد زیر تابوتش بود با مهربانی به زن گفت: "خا، هممون علی امیرالمؤمنینه تو گرما خفه میشی، صبر داشته باش." محمد مرد که از نور آفریدند. هنوز زیر بغل زن را گرفته بود که از قبرستان بیرون آمدند. تو کوره راه که افتادند، محمد زیر بغلش را ول داد. زن آرام و سرفکنده طرف مخالف محمد به راه افتاد. محمد می دانست که خانه او آن طرف ده است. مدتی ایستاد و پشت سر زن سرفکنده و خمیده نگاه کرد. بعد راهش را گرفت و رفت. چقدر آدم زیر این خاکا خوابیده. بوای بوای بوام و ننیه, ننیه ننیه ننیه ننم همش زیر این خاکند. یه زندگی اینجوری چرا باید مثل گرگ و کفتار به جون هم بیفتیم؟ چرا آخه اینا باید پولای من را بخورن؟ مگه خیال میکنن که جای دیگه هم غیر از اینجا هست که بخوابن؟ پدر سگا، پدری ازتون در بیارم که به داستونها بیارن اگه با گلوی مارتین را مثل آرد بیز نکردم، تخم بوام نیستم آنجا که گورستان تمام میشد، سگ زردن بوی دند بیرون جستهی زیر سایه چارتاقی ترک خوردهای دراز کشیده بود حیوان به دیدن محمد سرش را بلند کرد و با چشمان کلاپیسه ی بی جانش به او نگاه کرد سپس خمیازه خمارالوی کشید و دوباره روشنهای داغ یله شد و به حال قش افتاد حیوان زبان بسته مثل این که خیلی ناخوشه دیگه طرف های ما پیداش پیدایش نمیشه بدون که خیلی گش نشه بعد بلند صدا زد صد. شیرو، شیرو و سگ سر و دومش را از روماسه ها بلند کرد و به تن رعشه خود تکانی داد و پاشد دنبال محمد راه افتاد پیرمرد تو چرا مدتی پیدات نیست؟ گفتم بلکه ناخوشی و میخوای سقط بشی، آخه چرا پیش ما نمی میدونی که خیلی وقت ندیدمت؟ اما تو راست میگی، این تقصیر منه که تو را نپرسیدم تو ناخوشی؟ چته؟ سگ لقلق میزد و خودش را دنبال محمد میکشاند لاغر و مردنی و بیرمغ گر گرفته بود و له له میزد. دلم خیلی از این مردم گرفته باور می دلم می جای تو باشم و با شماها زندگی میکردم. کردم؟ آخه شما که به همدیگه نارو نمی زنین شما که دروغ و دقل تو کارتون نیست اگه بدونی این کریم هاشمزه چه آدم بیرحمیه؟ هرچی پول داشتم بالا کشیده پوری که بیست سال جون کندم و یه پول پور جمعش کردم همش جو سوراخ بافور کرده. بیا زبون بسه خیلی له میزنی بریم خونی ما یه خورده نون و آب بخور حال جا بیاد اصلا بیا دمکبر ما بمون هرچه داریم با هم میخوریم سپس آن کیک کشمشی که لای کاغذ تو دستش بود انداخت جلوی سگ سگ خودش را به آن رساند و بویدش و آرام آن را گاز زد پرس پرس های کیک رو ماسه ها ریخت و سگ آنها را لیسید. بخوره ای بخریون: فعلا تو از بچه های من مستحق سگ هنوز رو زمین دنبال خرده های کیک میگشت و محمد از او دور شده بود و سگ پس از خوردن تکه کیک باز دنبالش دوید. خانه محمد از سنگ های گسار که گوشمایی های بیشمار رو هر تکش نقش بسته بود، درست شده بود. این خانه فقط یک اتاق داشت که محمد خودش آن را ساخته بود سنگها را با ملات کلوفت و زمخت ماسو و آهک روی هم چسبانده بود سقف خانه با چندلهای سرخ کلفت و بوریا ساخته شده بود و بام آن گلندود بود در آن زمان این خانه ی خانه اعیانی حساب میشد. برای اینکه بیشتر خانه ها از پیش نخل و بوریا بودند پهلوی خانه لوکه بلندی رو ششتا چندل کلفت با بوریا و پیش نخر خود را از تو ماسه نرم بیرون کشیده بود و یک نردبان هم به آن لم داده بود. زیر لوکه یک گله بز و مرغ و خروس ولو بودند که با پوست اندوانه های خاکالود ور می رفتند و آنها را تک می زدند. با دیدن شیرو هم همه ای تو ها و مرغ و خروس ها افتاد. در کپر را که روهم افتاده بود هل داد و رفت تو کپر از حسیر فرش بود و آن بالا یک گلی افتاده بود که پسر و دختری هشت ساله روش خواب بودند یک آینو و یک چراغ و یک مشت خرد ریز تو تاخچه بود یک تفنگ کوتاه مارتین از گلمیخ آویزان بود چند تا گونی جو آرد و تودهی علف خشک گوشه کپر با هم خلوت کرده بودند دود کم پشتی تو اتاق پیچیده بود و بوی آشنای نیم سوز پیش تو دماغ محمد خورد. اجاق میان اتاق روشن بود و شهر رو داشت. ماست میبست و با دیدن محمد پا شد رفت جلوی او و سلامش کرد. سلام جونم. محمد جوابش داد و بعد فوری گفت. شیرو رادم قبرسون پیداش کردم. زبون بسته از تشنگی و گشنگی بیحال شده بود. آوردم نون و آبی بدم. بعد کوزه آب را از کنار دیوار برداشت و گفت: حالای تکنون هم بده من. ظرف سفالین آبخوری مرغ و خروس‌ها را که نیمه کوزه شکسته ای بود از جلوی آنها برداشت و آورد پیش سگ و از کوزه پرش کرد. سگ چند قدم عقب رفت و دمش را جنباند و به محمد نگاه کرد. مرغ و خروس‌ها به طرف آب هجوم آوردند. محمد آنها را کیش کرد شما که از این بدتری نمیشه اول شیرو و بعد شماها شیرو مهمان شما هست سک کاسه اول را فوری بد و کاسه دوم را آهسته تر تا نیمه خورد و زبانش را دور لبهایش چرخاند و از پایین چشمانش را به محمد دوخته بود و همچنان زبان و سر و گوش و دومش می حالا لجا اومد؟ آن وقت نان رو انداخت جلوی شیرو که برداشت و دوید رفت زیر درخت کنار. بعد زرف را برداشت برد زیر دوکه و برای مرخ ها پرش کرد. بخور این زبون بسا. مرغ و خروس ها با بیمیلی عقب رفتند و از سر و صدا افتادند. معلوم میشه سیرین. حسودیتون شده بود که به شیرو آب دادم. پناه بر خدا که شما ایوونان بعضی وقتا مثل آدم میشین. تو کپر که آمد، باز نگاهی به بچه های خفته کرد بچه ها از گرما بیحال بودند مگس رو صورتشان ول میزد. زبون بسته ها بعد یک راست رفت پیش های خوش که رو هم انبار شده بود و یک حلقه رسن قاتمه که مثل مار سیاهی دور خودش چند بره زده بود برداشت آن را وجب به وجب امتحان کرد و هر جا شکی در استحکام رسن برایش پیدا میشد، آن را خوب میکشید و وارسی‌اش میکرد. شهرو میان کپر ایستاده بود و مات به او نگاه میکرد. همچنان که رسن آهسته باز میشد، به آرامی باز روی زمین می خوابید و دور خودش چند بره می‌زد همچنان که رسن آهسته باز میشد، به آرامی باز روی زمین می خوابید و دور خودش چند بره میزد. بعد آن را باز چند بره کرد و به دوشش آویزان کرد. شهرو به شانه عرقالود او نگاه می کرد. می شوهرش برای گرفتن گاب سکینه آمده. با خودش میگفت: بیچاره بدبخت با زبون روزه این وقت روز این همه راه اومده ورزای یاقی مردم رو بگیره. این همه جوون بیکار از صبح تاشون تو ده یللی می زنن هیچ کدومشون عرضه گرفتن یه ورزا را ندارن. همش برای مردم بیگاری میکنه تا حرفشم بزنی خلقش تنگ میشه دلش میخواست مردش پیراهنش را میکند میداد به او ببرد دشوید و بعد مرد میرفت تا وقت افتار روبوریا بوریا خواب خوشی میکرد و او یک سفره قشنگ از نان و ماست و پرپین و منگک و ماهی شور و روتب برای شوهرش میچید تا پا شود افتار کند صدای محمد تو گوشش پیچید همش می ترسیدم بیفته تو ده و مردم را زخمی کنه آخه مگر غیر از تو تو این ده کس دیگه ای نیست شهر را ترکید و دید موقع آن رسیده که حرفش را بزند زن تو خودت که خوب می دونی کس دیگه نمی این ورزا را بگیرد چرا این حرف را می زنی؟ سکینه که مثل تو شوور نداره و هست نیستش همین یه ورزاست بعد برگشت و به زنش نگاه کرد چهره ای شاد و خندان داشت. عرق تنش خوشک شده بود و پیراهنش شوره بسته بود تو صورت شهرو خندید خنده باز تسلی بخشی و شهرو شرمنده گفت پسر زاراکبر را سخت زخمی کرده می ترسم به سر تو هم بلایی بیاره نه جونم این کار کار لحراز نبود بی خودی به این کار دستد او زورش کجا بود اینجور کارا زور میخواد. دستکم باید آدم به قد خود یه ورزا زور داشته باشه ها. بعد خندید، خلقش به جا آمده بود میگن نمیخواسته بگیردش، شوخیش گرفته بود، رفته بود، انگولکش کنی شهرو خندید، دیگه بدتر، عقلم خوب چیزیه، آدم بیکار باشه، بی اغلم باشه، پناه بر خدا دندانهای نیرومند زنگ خوردش به خنده بیرون افتاد زنش هم با او خندید و به سرتاپای شوهرش نگاه کرد هیچ دلش نمیخواست محمد از بهدوش برود. شوارش را خیلی کم و فقط شبها می دید. بودن او در این وقت روز برایش تازگی داشت. رنگ و بوش برای او عوض شده بود. دلش براش می سخت. آدم زحمتکشی بود. میدانست که با غم بزرگی که رو دلش است، باز برای شادی او می خندد و خندش جور دیگر بود. باز محمد گفت همش می بیفته تو ده به زن و زیرا و بچه ها حمله کنه. نه هنوز از تو نخلستون در نیومده. زود بر می گردم و راه افتاد. بگو ایشالله. و تا در رفت. البته که ایشالله. و سایش بغلش راه افتاد و شیر و دنبالش دوید. شهر و اندام درشت او را می و نمیخواست ازش دور بشود. دلش فشرده شد، برگشت و کپر و زمانی واله میان کپر ایستاد و یادش رفته بود که چه کار میکرد و میکوشید تا یادش بیاید و کارش را دنبال کند. یکی از بچه ها تکانی خورد و غلطی زد و باز بی حرکت ماند. از میان کپرها و لوکه ها گذشت و راه نخلستان را پیش گرفت. آفتاب سوزان مانند ورقه جیوه گداخته خودش را رو زمین انداخته بود تک و توکی آدم و حیوان تو صحرا راه میرفتند. از یک تپه شنی که مانند نهنگی میان صحرا خفته بود بالا رفت و سرازیر شد و از تپه بعدی هم بالا و پایین رفت جلوش آوانباری که یک درخت بابل گنده روش چتر زده بود پیدا شد بچه ها زیر بابل جمع بودند ده دوازده تا آدمیزاد سوخته و نیمه اوریان زیر بابل پخش و پرا بودند. اندوه نخلسان افق را سیاه کرده بود. رفت نشست رو سکوی جلوی آبنبار باد سوزانی میوزید و عرقش تنش را خنک میکرد. بر بچه ها کردند. منتظرش بودند. خلیل خیلی با محمد عیاق بود. او هم مثل محمد تو دار دسته ریسلی دلواری با انگلیسی ها جنگیده بود و دوتا انگلیسی کشته بود و همین براش افتخاری پدید آورده بود. جوان لاغر بلند چالاکی بود و حالا زراعت میکرد. زایر حالت خوبه؟ خوب زود اومدی؟ خلیل میگفته و خندان بود. به جون خودت مثل اینکه یه خمره شراب خورده. همچی مس مسه که نگو. من میگم تو هم ورش کن. گمون نمیکنم بتونی حریفش بشی تا حالا کسی یه چون این جونور دیوانه ای ندیده از گاو میشه مسم بدتره محمد چند بره تناب را رو از روی دوشش برداشت و گذاشت تو دامنش چکاهای عرق چهرش را آبلگون کرده بود عرق رو عرق و شوره رو شوره بعد گفت به جون خودت اگه شاخش نشکنم نومم عوض میکنم. اگه ولش کنی خیال میکنی هم اونجا میمونه؟ یادت نیست ورزای زار احمد پارسال یاقی شده بود یه نصف روز رفت و نخلصون بعد افتاد تو ده و چند نفر رو شلو پر کرد تا آخرش با گوله زدنش خلیل گفت: زایر میخواستی تفنگدم همرات بیاری شاید لازم بشه محمد جواب داد نه خالو خیال دارم حتما بگیرمش دارو نداره سکینه بدبخت همین یه دونه ورزاز اونم من با گوله بزنمش که هنری نکردم بگو ببینم حال لراست چطوره؟ شنیدم بد زخمی شده خلیل گفت نه بابا یه قلاق چل غلاغ می باکیش نیست نکه شاخ گرفته کنش خراش کچگی برداشته اگه شاخش سرد و برد نکرده بود که حتکش باره کرده بود بعد همه ی بچه ها با هم خندیدند و خلیل خوشش آمده بود که همه را خندانده بود کجایی نخل سونه؟ محمد پرسید و عرق رو پیشانیش را با انگشت گرفت و رو زمین ریخت. جا شوز میکنه وقتی به لحراس و حمله کرد زیر نخلای زار بود همین جوری تو نخلا بلوه مگه میشه بری نزدیکش سکینه که گاو مالش بود از راه رسید به او گفته بودند که محمد برای گرفتن ورزایش آمده بود زنی بالا بلند و سیاه پوش بود دور دستمال ابریشمی نیلی یزدی بسته بود چهره درد خورده و مکیده داشت تو پیشانی و میان ابروهایش و زیر لبش خال آبی کوبیده بود. هنوز جوان بود و یک بینیواره طلا تو بینیش بود. باهاش برهنه بود. دو خلخال نقره کلفت رو غزک پایش زیر بند خفتیهایش افتاده بود. وقتی رسید آنجا خلیل داشت به محمد می گفت تو نخلا ولووه. ایستاد و بندام درشت و یغور محمد نگاه کرد. میدانست که محمد پهلوان و جگردار است محمد به دیدن سکینه پاش و او از تمام مردانی که آنجا بودند یک سر و گردن بلندتر بود سکینه گاوش را خیلی دوست داشت اما دلش نمی‌خواست محمد جان خودش را به خاطر او به خطر بیندازد گرفتن آن کار آسانی نبود شاید این جوون یل را بزنه و نابودش کنه صد تا ورزا غربون یه تار موت بشه سکینه بلند گفت و صف مردها را شکافت آمد جلوی محمد. من راضی نیستم تو جونت رو برای خاطر من به خطر بیندازی. بلش کن تا خودش بترکه. من از این ورزا گذشتم. اگه آسیبی به تو برسه من دیگه چه جوری سرم را تو این ده بلند کنم؟ به شهر و بچه ها چه جواب بدم؟ محمد به سکینه نگاه کرد. چند بند قاتمه را تو دستان زمختش می فشرد. از حرفهای سکینه برزخ شد. دلش میخواست زن این حرفها رو نمیزد و حالا دلش نمیخواست جوابی به او بدهد. تند بلند شد و گفت خواهر میرم به امید خدا اگه ترکیدنی باشه باید خودم بتر کنمش. اما خیالت راحت باشه که سرم رو گنده میارمش پیش خودت ازخایی کنه. باز بچه ها خندیدند و محمد به طرف نخلستان راه افتاد. کنده های نخل ها پشت ماسه تپه ها پنهان بودند و پیش ها و پنگ های آبستن خورما از سر تپه دیده میشد. شد. همچنان که از ماسه تپه بالا میرفت، رفت کم کم کنده های زمخت نخل ها هم بالا می آمدند و از تپه که سرازیر می شد باز کندهها ها پنهان می شدند و باز بالای ماسه تپه دوم که رسید دوباره اندام بلند نخل ها از ته کنده پدیدار می گشت. محمد این منظره را بسیار دیده بود و هر وجب صحرا برایش رنگ و بو و شکل خود را داشت. میدانست چه وقت جای ماسه تپا عوض می شود با عشقبازی طوفانهای دیوانه و با رمله بیابان آشنا بود. یک وقت صبح از خواب ها میشدی میدیدی ماسه تپه که دیروز آن سوی صحرا بود راه افتاده خودش را کشانده و رفته یک میدان آن طرفتر نشسته. خودش این گردبادهای کور کننده سوزان را فراوان دیده بود.